بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم همس السلام همس وله محمد واتجهت وجهه هو العليم الدرس العاشر الفروع الدينية الإسلامية. صفحه <متوسط> <متوسط> هفتادی یک درس دهم، درس دهم، هم درس العاشر و فروع دینیت الاسلامیه فرع های دینی فرع فرع ها فروع جمع فرع فرع به معنی بخش ها، شاخه شاخچه ها شاخ وا آماده <تصفيق> الفروع الدینیه الاسلامیه فرع های دینی کدام دین اسلامیا هم <تصفيق> فرع دین بنویسین. راحت. درست؟ ا. این فروع الدین كثیره. قطعا بخش های دینی یا فروع دین زیاد است کثیرتون یعنی زیاد است این فروع دینی کثیرتون قطعا فروع دین زیاد است زیاد است آه درست شد و اجازه اسلام به تقلید فیها و و اسلام اجازه داده است به تقلید فیها به تقلید کردن در اون فروع دین آفیها در فروع دین این فروع دینی کثیرتون قطعا های دین زیاد است و اسلام اجازه داده به تقلید کردن در اون فروع دین خب چطوره؟ من تهید از کسی که اجتحاد کردن از کسی که تلاش کردن علم آموختن و, و اسلام را یاد گرفتن فروه را یاد گرفته کسایی که یاد ندارن باید انمازان ها سوال کنه و یاد بگیرن درسته؟ بعد اینجا نکته داره جامعا لشرایق اون مجتهد باید جامع همه شرط های مجتهد بودن را داشته باشد. آره. جامع شرایط باشه، جامعه شرایط باشه. جامع مجتهد باید جامعه شرایط باشد. دقیق کردین چی شد؟ خب، حالا توجه داشته باشن چی میگیم؟ خب، ببینیم چند کلمه را دقت کنین یک کلمه مجتهد یک کلمه تقلید و دیگه کلمه جان و شراید. تقلید گفته که معنیش عمل کردن بدستور دستور مشتهید هست مشتهید کیست؟ مُجتَهِی خودش در لاغت با معنی تلاشگر هست اما در اصطلاح مُجتَهِد کسی است که علوم اسلامی را فرا گرفته باشه و این شرایط رو هم داشته باشه حالا باش ببینید که ما شرایط به شما بخونم ها خب؟ ببیند ما میخوانیم و از مشتهیده باید تقلید کرد دقت میکنیم؟ و از مشتهیده باید تقلید کرد که یک مرد، دو بالیر سه عاقل، چار شغه دوازده امامی، پنج خلالزاده، شش زنده، هفت آزاد، و هشتم هم عادل باشه. بنابراین اگر یک نفر خیلی علم داره ولی آدم خوب نیست نباید ازش تقلید کرد فهمیدین؟ باری خوب اینا جمله شرایط یک مشتهد هست و یک شرط دیگر هم درش هست و اون مسئله اعلمیته وقتی یک مشتهد اعلم اعلم یعنی آباهتر عالمتر از مشتهد دیگه هست دیگر هست از مشتهد اعلم باید تقلید کرد. توجه شده؟ خب در اینجا در بین شعیان یک بحث هست بقید میکنه چه میگه؟ یک تعداد شعیان میگه که از مجتهد میشه و تقلید کرد یک تعداد شعیان که امروزه هم هست میگه ما تقلید نمیکنیم بلکه بر اساس روایات عمل نکنیم اگر بخوایم تقریب کنیم بین هر دوتایشان منظور هر دوتایشان عمل کردن به احکام خداست هیچ فرق نمی کنه درسته؟ عمل کردن به احکام خداست منتها این احکام خدا را اگر خود نفر تنیست یعنی بر اساس روایات برایش مشخص شد این نفر خودش مشتهید مانند می ماند. مشتهید مانند که او در ما سنه چی داریم؟ یا تقلید داریم، یا احتیاط داریم، یا اشتحاد خواهم؟ بعضی که اصلا نمیره که خودش از روی روایات یا از روی آیات احکام خدا را به دست بیاره اینا فقط تقلید کردن یعنی از یک عالم سوال کردن و همینطور عمل کردن یک عده دیگه هم درس میخوانن احادیس اینا را میخوانن، آیت قرآن را هم میخوانن باز احتیاط میکنم مثلا برای نماز در یک جایی هست نمیدانه که نماز خود را قصر بخوانه یا تمام بخوانه در اینجا هر دوی شیره میخوانه بنابر احتیاط درست هم امروزه نماز جمعه اگر کسی بخوانه میگن احتیاطا نماز ظهر رو هم بخوانه آدم که احتیاط میکنه هم جمعه میکنه هم ظهر درست؟ اگر بر خلاف احتیاط عمل کرده دیگه ها؟ و یک ایده دیگه هستن که مشتهیدن یعنی نه تنها احتیاط میکنه که از بس زیاد درس پاندن از بس متخصص شده دیگه از مرحله احتیاط رد شد درست شد؟ آدم که متخصیصه دیگه احتیاط معنی نداره دیگه. درست برسن. یعنی به یک مسئله یا یک حکم قطعی اسلامی میرسه. درسته؟ مثل که <puisque> <مثل> ما شما فعلا قطع داریم یقین داریم که نماز واجبه یقین داریم یا نه؟ <تصفيق> حالا که یقین داریم نماز واجبه دیگه معنی داره بکنیم احتیاطا نماز واجبه <مثل> نه دیگه واجبه دیگه هست کسی که مشتهد میشه در بعضی مسائل اینطوری به یقین میرسه. درسته؟ در باز خب پس قسمت شد یکی تقلید یکی احتیاط، یکی اجتهاد خب. کسی که اصلا قرآن را نمیخونه که احکام را دست بیاره و دست بیاره روایت نمیخونه که احکام را به دست بیاره بلکه از گفته یک کارشناس یک متخصص عمل میکنه اینی نفر تقلید کرده یک ایده دیگر رفته قرآن خوانده روایت خوانده احتیاطی عمل میکنه و یک ایده دیگر بخی متخصص شده که برای دیگر را بخی مسئله میگن براشد؟ شده اینی هم از این باید مشتهید اونمون شرایطی که پیشتر گفتیم رو داشته باشه شرائط و ایلا ازش تقلید جامعه شرایط و شرایطی که پیشتر خواندیم عادل شهد و آزده امامی براشد؟ خب حالا تقلید خودش هم میگه دیگه تقلید چیه و هو العمل بفتوا احد المجتهدين تقلید و هو اون تقلید عمل کردن به فتوای یکی از مجتهدین هست فل احکام شرعیت الفرعیه در احکام شرعی فرعی خب دقت کنین چی میگه در احکام شرعی فرعی درست اینجا نکته داره اونو فرعی احکام کل هرون چی که خدا میگه خبمه دیگه نه؟ شرعی هم که شرعی هست دیگه واضح هم فرعی معنیشه چیه؟ معنیشه اینه که در اصول دین تقلید جایز نه. برست شد؟ باید همگی یقین داشته باشه اونم عن دلیل و برهان داشته نه؟ عن دلیل و برهان. باید یقین داشت اما در فرای میشه به گفته یکی از کارشناسان عمل کرد در اصول دین نمیشه چون که فلانی مگر لذا خدایی اکر باید یقین داشته باشیم که خدایی اکر آره؟ اینطوریم فاهمده شد واضح نکات نکتش رو گرفتیم فرعیه معنیش اینه که در فرای میشه تخلیط کرد در اصول دین نمیشه تخلیط کرد و هو العمل اون تقلید عمل کردن به فتوه یکی از مشتهیدین است در احکام شرقیه فرقیه فرقی. همین که فرقی. چی؟ در رسول ایدن نمیشه خب حالا فهمیدیم که قصه چیه؟ حال سوال اقسام و فروع ایدن فروع چند دست است؟, است؟ الفروع الدینیت المعروفه ما بالا گفتیم فروع خیلی زیاده نه؟ گفتیم یا نه؟ پایین چه مگیم؟ مگیم الفراع الدینیت المعروفه، این معروفه. فروع فراع الدینی که معروف هست، نه کله گیشه، خب؟ یعنی معروفی هایشی کدهم کدهم هیه، این فروع دین معروفه از نماز، از صور، روزه، الخمس، از زکات، والحج، والجهاد، چندوم شد؟ و بالمعروف چندم و النحی عن المنکر و التوالیو چندون شو؟ و التوالیو لی الله جل و علا و الله یعنی دوست داشتن و اولیای خداوند متعال جل جلالو و عظمت شکل عظم تولا دوست داشتن دوست داشتن اولیای خدا دوست داشتن دوستان خدا و تبریو چندم شد؟ دهام و تبریو من اعدا الله تعالی و برا جوستن دور جستن بیزار جستن بیزار بیزار جوستان بیزاره منش چیه ها دوست نداشتم درست شد بیزاره جوستان یعنی دوست نداشته بعد تبری من اعداء الله تعالی و بیزار جوستان از دشمنان خداوند متعال دوست نداشتم دشمنان دوست نداشتم دشمنان خداوند متعال چی یعنی دشمن خود یعنی دشمن اعداء دشمنان واضح شد؟ خب پس امروز ما شما در قسمت چه چند چیز رو خب اولین که فرو ایدن خوندیم نه اصول ایدن چند تا بود؟ فرو ایدن چند تا شد معروف هایشه؟ معروف هایشه؟ بیش از هده است اما ما مهم هستم ده تاشت معروف ها. مهم نه، معروف هست درست؟ مهم هم البته ممکنه بیتونیم بي بي بگیم ولی این دهتاش معروف هست واضح شد؟ خب در اصول میشه تقلید کرد؟ در فرایدین میشه تقلید کرد؟ نه چی بود؟ بگو بو تقلید چیه؟ تقلید چیست؟ بگو زینب تقلید چیه؟ کجا بود این طال درم؟ نه، گو بود تو بود عمل کردن به فتوه یک از مشاهده آه، عمل کردن به فتوه یک از مشاهده اینوی تقلیده دیگه، درست شد؟ آره، پس باید دقت کنیم که از این بود سوال مونیم و سلال الله خلا سیدنا محمد و آله قاهرین